اشخاصی مثل من در یک جریان دیگه هستند با بسته به یک طبقه دیگه هستند و از نسل دیگه هستند و از اصل دیگه با فرهنگ دیگه ای، افکار و اندیشه های دیگه ای، نحزت ها و جریان های تفری و اجتماعی دیگری و از های یه گوشه ای از این شهر یه سری آدم هست آدم های مثل من حس از لحظه های مثل حس از فردار یه شکل دیروز خسته از آدم ها و زندگی خشک و بیروز من از یه نسل دیگه صدای گوله ها تو گوشم واسم دالایی خوندم بیشی کمه ننم صدای جی قداد زیاد شنیدم با صدای بمب و تو بیست و چند سال عمرن آدم کنار آدم ندیدم رو کناره هم ندیدم یا جلو یه یا هم اونا همش در حال جنگ بودم حتی وقت خواب توی شب میتاط تو بیس تو شان سالا اونم در بیس بار شان دور مрда بیس تو شان سال حتامو خوردم زندگی رو برعکس کشیدم تا منم مثل اونا اون رو برعکس ببینم من وقتی مرد شدم که پر داد شدم ظاهر آدمو و همه تو زرد شدم تا اینکه خواستم که این اتفاقو درک کنم از توی آدمای اجتماع انترف شدم این خیلی سخته این خیلی تلخه که آدمای دورم نمیفهمن چی هر این اتفاق میشن نقطه توی قلبه <تصفيق> یه مشت اعتقاد شرطا پرد میره تو مقصد تو یکم عرف زدم گفت بگو مذرت میخوام این زندگی یه خواب ترخ نم کسی ازم نمیپرسه که چیه درد من دردم که پرده رفت کنار از پنجرم پس دیدم همه چیه داد زدم با حنجرم بعدش بین من و خودم شیروش شد انگه این باز شکه از دست مردمان بربرم از پس نگو برگرد پس نگو برگرد. دقیقات هایی که من می کنم تلخیر مدید داره این تلخیره در من ببخشید اگر معتقدید و میبینید که درش حقیقت هست